کتاب داستان‌ها و افسانه‌های مردم ژاپن نویسنده آنیتا کانا مترجم صدیق ابراهیمی ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان برادر هیلگر روزی روزگاری در یکی از دهکده های اوزاکای ژاپن، دو برادر به اسم تمونوری و تنکارو زندگی می کردن. تمانوری بزرگتر و ثروتمندتر بود ولی خیلی خوشباور و ساده لوح بود در حالی که تنکارو فقیر بود اما بسیار زیرک و حیلگر او همیشه دنبال نقشه های شیطانی بود که مردم و آزار اذیت کنه به همین دلیلم کم کم اعتماد مردم ازش سلب شد طوری که دیگه ازش دوری می کردن. برادر بزرگتر که تمانوری بود بارها سعی کرد تنکارو رو به راه درست هدایت کنه اما سعی و تلاشش بیفایده بود روزی تنکارو در حیات عقب خونش یه ظرف بزرگی رو روی آتیش جوش آورد و همون موقع برادرش تمونوری وارد خونه شد تنکارو با عجله ظرف آب جوش رو آورد جلوی باغ جلوی خونش و گذاشتش روی یه چراغ خوراکپزی که خاموش بود تمونوری با دیدن ظرف آب جوش و اون چراغ خاموش تعجب کرد. پرسید: ببینم چرا این آب داره میجوشه؟ من که آتیشی زیرش نمیبینم. بینم. تنکارا که منتظر این سوال بود خیلی خون سرد جواب داد آره چیز مهمی نیست این یه ظرف سهرامیزه که من اونو دیروز از یه کشاورز خریدم. در اون یه چیزی وجود داره که بدون وجود آتیشم به جوش میاد. تمانوری سادلو زود حرف برادرشو باور کرد و چون از اون ظرف خوشش اومده بود ده سکه یه تلا بهش داد و اونو خرید و خیلی هم از این معامله خوشحال شده بود ظرفو برد به خونش به خوبی شستشو توش آب ریخت بعد اونو گذاشت روی یه اجاق خاموش ساعتها گذاشت همینطور منتظر موند که بلکه آب به جوش بیاد اما نشونه ای از جوش اومدن آب دیده نشد تمانوری نگران شد او دستورای برادرش رو مو به مو انجام داده بود دلیلی نمیدید که آب به جوش نیاد کم کم به این فکر رسید که ممکن تنکارو فریبش داده باشه پس خشمگین شد و عصبانی بلند شد ظرف و برداشت و برد خونه برادرش ازش پرسید چرا آب این ظرف تو خونه من بدون حرارت به جوش نمیاد در حالی که اینجا داشت می جوشید؟ تنکارو که خیلی حیله گر بود و برای این سوالش از قبل جوابی آماده کرده بود گفت ببینم پیش از اینکه که ظرف رو بذاری روی اجاق اونو شستی؟ تمونوری گفت بله خب شستم تنکارو بلافاصله فاصله گفت خیلی خوب قدرت سهرامیز اونو شستی و از بین بردی برای همین آب تو توخونه تو به جوش نیامده در حالی که خود دیدی که اینجا داشت بدون حرارت میجوشید تمونوری که از کار خودش خیلی ناراحت شده بود در حالی که به خودش لعنت میفرستاد به خونه برگشت دو ماه گذشت تنکارو برادر هیلگر دوباره بیپول شد و به فکر هیله و نیرنگ جدیدی افتاد او یه ضعیف ضعیف و لاغر داشت که چندتا گوی کوچیک تلائی رنگ خرید و آورد خونه گوهای طلایی رو دوروبر اون اسب ضعیف روی زمین جا داد تمونوری که میخواست به اوزاکا سفر کنه فکر کرد که خوبه پیش از رفتن به برادرش سری بزنه و حالشو بپرسه رفت خونه ی تنکارو گوشه ی حیات خونش چشمش افتاد به اون اسب لاغر که زیر پاش چندتا تا گوی کوچیک طلایی بود تنکارو گفت برادر عزیزم به ظاهر این اسب نگاه نکن چون که از نژاد خیلی کمیابیه ولی یه روز در میون چند تا گوی طلایی پس میده تمونوری گفت سعی نکن منو گول بزنی من دیگه میدونم که تو داری دروغ میگی تنکارو گفت برادر خوبم برو پیش اسب و با چشم خودت ببین تا حالا باید چندتا تا گویی پس داده باشه تمونوری رفت اون طرف حیاط و پیش اسب و دید که گوه های طلایی از پشت اسب افتادن به زمین بعد اومد پیش تنکارو و گفت من ازت عذرخواهی از می کنم بی دلیل به حرفات شک کردم این پونزده سکه طلا رو بگیر و اسب رو به من بده تنکارو با اشتیاق تمام اسب به برادرش داد و سکه های طلا رو گرفت. تمانوری برای اون اسب یه استبل کوچیکی ساخت و اونو در اون استبل جا داد و حیون رو حسابی تغذیه کرد. هر روز منتظر میمون که اسب گوی طلا پس بده. چند روز گذشت اما هیچ خبری نشد. تمانوری بازم فهمید که برادرش فریبش داده و بهش دروغ گفته. با عصبانیت رفت پیش برادرش داد زد یه روز از این کارات پشیمون میشی اما تنکا رو قیافه حق به جانبی به خودش گرفت و با حیلگری گفت برادر خوبم من چرا تو رو فریب بدم حتما اسب رو جا دادی توی استبل این اسب فقط توی هوای آزاد گوی تلایی پس میده البته تو با این کارت قدرت حیوان رو ازش گرفتی منم دیگه نمیتونم کاری بکنم اما از اون به بعد تمنوری دیگه به حرفای برادر هیلگرش گوش نکرد و دیگه حرفاشو باور نکرد و با خودش عهد بست که از اون به بعد با تنکارو برادر هیلگر هیچ معامله ای نکنه تا هیچ وقت پشیمون نشه از اون موقع به بعد هم تنکارو تنها موند و زندگی سختی رو گذروند چون همه مردم دیگه او رو شناخته بودن